بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الاول هو الاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم سوره مباركه حديد هست الحديد و اين سوره بالاتفاق اتفاق سوره مدنی هست. از نظر ترتیب نوادو چهارمین سوره هست که بر آن حضرت صلی الله علیه و نازل شد. معنای حدید آهن است آهن. چون که در این سوره بحث آهن آمده و آهن یکی از ابزار جهاد هست جنگی هست هرچی که اسلحه در جهاد بکار برده میشه استفاده میشه تمام اینها از آهن درست میشه و از آهن ساخته میشه پس آهن اشاره به جهاد هست اما مناسبت این سوره با سوره گذشته و سوره های گذشته در سوره های گذشته بحث بحث توحید بود در سوره نجم خواندیم که هیچ کسی در دربار الله عزوجل نمیتواند شفیع غالب بشه نه لات نه عزات نه کسی دیگر در سوره قمر خاندیم که خداوند برای هر کسی یک حدی تاین کرده یک اندازه تعیین کرده و در سوره الرحمن خاندیم که برکات دهنده فقط و فقط ذات رب العالمین هست کسی غیر از خدا برکت نمی دهد. و در سوره واقعه که آخرین سوره بود خاندیم فسبح بسم ربک العظیم یعنی وقتی که برکات دهنده الله است پس پاکی او را از همه شرکا از زن از فرزند از دختر از عیب بیان کنید یعنی توحید اون را بیان بکنید خب حال در سوره حدید و سوره های بعدی موضوع موضوع انفاق و جهاد است خرج کردن و جهاد و ربط به این صورت میشه که وقتی که توحید ثابت شد برکات دهنده فقط الله هست خداوند ذاتش شریک ندارد هیچ کسی با خدا تعالی در هیچ وصفی شریک نیست لذا برای این ذات برای اشاعت این مسئله برای پخش و نشر این مسئله برای تبلیغ توحید مال و جانتون را صرف کنید از مال و جانتون دریغ نکنید بنابر این سوره مبارکه حدید دو بخش دارد یک بخش درباره انفاق است بخش اول سوره است بخش دوم درباره جهاد هست که آخر سوره ورکوئے آخر سوره است و بعد از سوره حدید هشت سوره می آید چهار سوره اول درباره موضوع دوم, دوم حدید هست در جهاد یعنی سوره مجادله و سوره حشر سوره ممتحنه و سوره صف این چهار سوره در جهاد صحبت می کنند و چهار سوره بعدی درباره موضوع اول سوره یعنی درباره انفاق سوره جمعه سوره منافقون سوره تغابون و سوره طلاق و آخرین سوره که تحریم است درباره هر دو موضوع گویا از این به بعد حدوداً 10 تا سوره هستند که موضوع اینها انفاق و جهاد است یعنی وقتی که توحید ثابت شد که بغیر از الله عزوجل هیچ کسی نشفی هست نه برکات دهنده است و نه چیزی دیگر پس برای توحید و اشاعه توحید شما چیکار بکنید شما جان و مال مصرف کنید اول درباره مال میاید این سوره از طرفی از مصبحات است های مصبحات به اون های گفته میشه که سوره آغاز میشه با تسبیح خدا سبح لله یا یسبح لله و های مصبحات فضائل بسیار زیادی دارند رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در روایت میاد که شبها وقتی که می خوابیدند قبل از خوابیدن خودشون سرها مسببات را قراءت می کردند، تلاوت می کردند چون تسبیح یعنی پاکی خدا و خدا از زوجال خیلی خشنود میشه، خیلی راضی میشه. از بندی و بندگانی که اون بندگان تسبیح خدای عزوجل را بیان می کنند پاکی خدای عزوجل را بیان می کنند بیان پاکی یعنی بیان توحید و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود سوره آیه هست که اون آیه از هزار تا آیه درجهش بالاتر و تر است اون آیه در همین سوره هست که شما می خانید آیه سومی این سوره هوا الاول والآخر والظاهر والباطن و هوا بکل شین علیم بچی زیبائی اللہ عز و جل را وصف کرده بچی زیبائی اللہ تعالی را تعریف کرده خدا تعالی خودش خودش را زیبا معرفی کرده زیبا وصف کرده لیزا ما هم همیشه خدا تعالی را این گونه وصف کنیم یعنی این را ورد بکنیم این را همیشه بخونیم رب راضی میشه خوشنود میشه دنیا و آخرت مارا خداون آباد میکنه وقتی که ما همیشه بخانیم هو الاول والآخر والظاهر والباطن و هو بکل شئین علیم لذا این سوره دارای فضائل بسیار زیادی هست آغاز میشه با تسبیح خدا، گرچه ارز کردم موضوع سوره انفاق و جهاد است، اما خدا تعالی آغاز می با توحید که فراموش نکنین مسئله اصلی چیه؟ مسئله اصلی خدا را یگان دانستن، خدا را یگان پنداشتن، خدا را یگان اعتقاد و باور داشتن، و تنها او را عبادت کردن، رضا اللہ می فرمائید سبح لله ما فی السماوات والارض تسبیح می گوید برای الله بنویسی زیرش قالا قالن و حالن ان تسبیح هم تسبیح قال هست بسیاری از مخلوقات قال ندارن زبان ندارن ولی حالا اونها تسبیح خدا میگوین پاکی خدا اطاعت و فرمان بری از خدا و بسیاری از مخلوقات استن که قالا تسبیح میگویند یعنی بازبان تسبیح میگویند مثل انسان فرشته جن بسیاری از پرندگان چه چه می تسبیح خدا بیان میکنند لذا قالا و حالا تسبیح خدا می گویند سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض تمام ان مخلوقاتی که در آسمان ها هستند و در زمین هستند و هو العزیز الحکیم علت چیه که تمام خلائق سناخان او هست تعریف کننده او هست مداح او هست الله می فرماید که اون ذات عزیز هست و هو العزيز الحكيم اون ذات غالب هست و در کارهاش حکمت هست چونکه او قدرت داره او حکمت داره لذا همه سناخانی او هستند همه تسبیح گویانی او هستند ما ما انسان‌ها چرا اینقدر کوتاهی داریم ما کسانی که خودمون را نسبت به علم و به اهل, ع... اهل علم نسبت میدهیم گاهی می‌بینی مبلغان در هر موضوع صحبت می کنند در موضوع تاریخ صحبت می جغرافیا صحبت می سیرت صحبت می‌کنند، صحابه صحبت می همه همینها لازم هستند در موضوعات مختلف اخلاقی صحبت می کنند در باره وفا صحبت می انفاق صحبت می کنند اما در باره توحید کمتر کسی صحبت می چرا می ترسند از دشمنان توحید بعضی می‌ترسند. لذا الله عزوجل و می تمام خلائق زمین و آسمان پاکی و تسبیح و توحید منو بیان میکنند لذا اگر تو هم می محبوب خدا باشی تا زنده در هر جلسه از یگانگی خدا بگو از پاکی خدا که هیچ کسی شریکش نیست نه مخلوق شریکش هاست نه انسانه نه جن نه فرشته نه غیر اینها هستن سبح لله ما فی السماوات والارض لماذا نقول لهم؟ وهو العزيز الحكيم هو ذات ذاتي وهو غالب قدرت كامل الحكيم حكمت كامل وفي بينا خداوند عز وجل مراتب مختلف من توحيد ربياني فرمائد مرتبه اول تصرفات ملک له ملک السماوات والأرض فقط وفغت براي الله پادشاه یہ و زمین افاق و زمین علو و سفل بالا و پایین همه در اختیار الله در تصرف الله دوم وجود شما هم در تصرف الله یحی و یومید شما را زنده میکند و شما را می میراند موت و حیات شما هم به دسته الله نه تنها تصرفات زمین و آسمان تصرفات در وجود شما انسان ها بلکه و على كل شيء قدير او بر هر چیزی قادر هست بر هر چیزی الله توانا هست قادر مطلق هست و سوم هو الاول والآخر والظاهر والباطن الله عن ذاتی هست که اون اول هست او آخر هست او ظاهر هست او باطن هست اول هست به چی معنا؟ یعنی خدای اززوجل از ازل بوده از ازل بوده قبل از خدا هیچ چیزی نبوده و قبلیت وجود ندارد قبل از خدا والآخر معنیش این خدای اززوجل تا ابد خواهد بود این آئی را همون طوری که در مقدمه ارس کردم در دعای و مناجاتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند بحتر و بیشتر تفسیر میشه. اللهم انت الاول فلیس قبل ک شی و انت الآخر فلیس بعد ک شی و الظاهر فلیس فوقک ک شی و انت الباط فلیس دون ک شی خداوند اول هست یعنی قبل از خدا هیچی نبوده از ازل بوده آخر هست یعنی همه فنا میشن خدا میمانه کل شئن حال کن الا وجها کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذل جلال و اکرام ان ذات بی ایمان با آخر هست وال ظاهر خدا الزواجال ظاهره ظاهر عنا با الغالب او بر هر چیزی غالب است بر هر چیزی مسلط است و هیچ چیزی نیست که او تحت سیطره رب سبحانه و تعالی نباشد و الباطن و عنا بالباطن العالم قربی میگه باطن یعنی از درون میده عالم بیکلش یهاس بس من قبلا هم خدمت شما ارز کردم در مقدمه و مسئله علا شما خاندید که دو وصف معروف هستند این دو وصف اگر در کسی بود در ذاتی بود او لایق عبادت است اگر نبود نیست یکی اینکه قدرت و تصرفش زیاد باشه هر کاری بیتونه برای منو تو انجام بده اون ذاتی که اینقدر قدرت داره که موت و حیات هم به او هست یحی و یمیتر اون ذاتی که انقدر قدرت دارد که لهو ملک السماوات والارد پس این قدرتش کامله و دیگن که عالم هست والظاهر والباطن و هو بكل شئین علیم علمش هم کامله وقتی قدرتش کامله علمش کامله پس او لایق عبادت هست غیر از او نیست و دلیل دیگری بر این الله اللہ می فرماید هو خلق السماوات والارض.» بازم در ادامه هم بیان قدرت هم بیان علم اندو نکتره توجب فرماید علمش کامل قدرتش کامل پس لایق عبودیت معبودیت او هست بنده او را عبادت کند هو الَّذی خلق السماوات والارض»، فی ستت ایام الله آن ذاتی هست که آفرید آسمان ها و زمین را در مقدار شش روز این مقدار شش روز چند بار تفسیر شده ثم استواء على العرش سپس متوجه عرش شد بر عرش مستوی شد قرار گرفت اینم تفسیر شده که حقیقتش را الله بهتر میداند پس این هر دو بیانگر قدرت بوده این را خدمت شما عرض کردم که شیخ رحمه الله میفرماد استواء على العرش کنایه از پادشاہی از پادشاہ مطلقه پس قدرتش کامله یک پادشاه در ملک هر اختیاری دارد و علمش رب ببینید یعلم ما یلجو فی الارض میدانت الله آن چیزی که وارد میشه در زمین و ما یخرج منها و آن چیزی که خارج میشه از زمین چی چیزی داخل میشه در زمین بزر که شما می رزید خدا می دونه این بزر کجا رفت دانه و قطره باران که میاد خدا می دونه این کجا رفت خزانه هایی که انسانها ها دفن کردن تو زمین خدا می دونه این کجا هستند مرده که در زمین دفن هستند همی را خدای عزوجل جل پس مایل فل ارد چی من البزر والمطر والکنوز والموتا همین ها را خدا میدانت وما یخرج منها آنچه که از زمین خارج میشه از زمین چیزهای مختلفی خارج میشه یکی انکه ما یخرج منها نباتات هستند که از زمین خارج میشوند بند درخته گیاه بوته گل هست و دیگه از زمین گاهی ارز کنم که گاز خارج میشه از زمین چیزهایی دیگه هست که بالاخره علوم جدید کشف کردن از زمین خارج میشه ما نمیدونیم الله میدونه اونها را بخاراتی هستند که از زمین خارج میشه مردها روز قیامت از زمین خارج میشوند همی را اللہ عز و میداند و اخرجت الارد و چه مرد خارج بشه چه کانزو خزانه خارج بشه همه را الله میداند و ما ينزل من السماء که نازل میشه از آسمان مثل فرشته نازل میشه مثل باران نازل میشه مثل فیصله های خیر و شر پای میاد همه را الله میداند و ما فیها آنچه که عروج میکنه در آسمان بسوی آسمان میره بعضا فرشته و دیگه چیزی که به آسمان اروج میکنه دعاهای صالح شما مؤمنین هست دعاهای مقبول شما اعمال صالح شما شما عمل خوبی انجام میدید اینها رو فرشته به بالا میروند همه اینها را الله میدن منش اینه که خدامند از از تمام ذرات جزئیات حتی اعمال بخارات غیر و از همه خبر دارد وهو معكم اينما كنتم اي خاصه ديجري از حواس علم باريتعالهس الله با شما از هر جباشيد اين به اعتبار علم هست هر جا تو انسان هستي الله ونجا هست والله بما تعملون بصير و خداوند به تمام اعمال شما بينا هست اعمال شما را ميبيند له ملك السماوات والارض فقط و فقط برای اللہ آسمان و زمین و إلى الله ترجع الامور همه امور بازگشت و مرجیشون سوی الله هست لا اله غیره یولجو اللیل فی النهار و یولجو النهار فی اللیل بعضی از تصرفات را اللہ تعالی به طور نمونه ذکر میفرماید که شما قبلا خواندید. داخل می شب را در روز دو مفهوم و دو تفسیر عرض کردم و یولجو النهار فی اللیل روز را داخل می در شب و هو علیمون به ذات الصدور این بیان قدرت بود این باز خاصه پنجم علمی هست اون ذات حتی اسرار سینهها را هم می داند. تصورات و تخیلاتی که در سینه ما هستند در قلوب ما هستند از همه خبر دارد لذا چنین ذاتی هست وقتی که چنین ذاتی هست می که همه و همه ما در مقابل اون ذات تسلیم بشیم به او ایمان بیاوریم به بی توهیدش، به یگانگی و برای این توحید مال و جانمون را قربان بکنیم لذا بعد از ان این اوصاف باری تعالی بیان شد بعد از اینکه کے اس ویشگیہاں پروردگار بیان شد که چنان ذات مقدس و ذات والایی هست چنان رب بزرگی هست لذا حق اون رب چیه آمینو بالله و رسوله ایمان بیاورید به الله و رسولش ایمان بیاورید ایمان که از قبل داریم منظور صبات بر ایمان است استقامت بر ایمان است وقتی که معبود شما چنان ذات عظیمی هست پس شما بر این نعمت ایمان با چنگ و دندان بچسبید و این را ببینید از دستتون نره و برای بقای ایمان هر نوع فداکاری و قربانی که لازم است بید چه جانی چه مالی امر تعالى عباده المؤمنين بالثبات على الیمان و خداوند خدا را امر کرد به اینکه بر ایمان ثابت قدم باشند و ادامه بدند و في سبيل الله و در راه خدا بخاطر این خدای بزرگ نفقه بکنند لذا الله می فرماید امنو بالله و رسوله ایمان بی به الله و رسولش و انفق و خرچ کنید یک نکته ای که باید اول می گفتم فراموش کردم الان عرض کنم که بخش اول این سوره با توجه به اینکه درباره انفاق است خداوند تعبیرهای مختلفی برای انفاق به کار می برد پنج نوع تعبیر که هر تعبیری با تعبیر دیگر متفاوت است یا پنج تا دلیل و علت انفق چرا شما باید خرج کنید؟ آخی من پول دارم چرا پولم را باید خرج کنم؟ مفت به این اون بدم دلائلش را خدا بهم می فرماید و انفقو مما جعلكم این اولین دلیل است و انفقو مما جعلكم مستخلفین فی خرج کن از اون مالی که خدا شما را قرار داد خلیفه و جانشین در امال یعنی مال مال خودت نبود خدا تو را خلیفه قرار داد تا دیروز هیچی نداشتیم از مادر متولد شدیم حتی که لباس هم نداشتیم اما امروز که داریم زمین داریم باغ داریم ماشین داریم مغازه داریم این مال دیگران بود تا دیروز مال ما نبودن مال دیگران بودن مال پدران ما بودن مال نسل گذشته بودند امروز خدای عزوجل شما را جانشین اون مال قرار داد شما هستید خلیفه خلیفه گذشتگان جانشین گذشتگان در این اموال دیریز میگفت این محل فلانی هست، امروز میگه این محل مال فلانی است این روستا مال فلانی امروز میگه این روستا مال فلان انسانه این زمین این باغ این کشاورزی این مغازه این پاساج هر چیزی مال دیگران بود الان شما را خدا خلیفه و جانشین اون حق قرار داد الان شده مال شما کی شما را بر این منصب قرار داد الله قرار داد وقتی که بنده تصور کند این خودش دلیل خوب و دلیل قوی هست که این مال مال پیشینیان بود امروز خدا من قرار داده همون خدا دستور میده که من خرج بکنم در راه او بخشی از این را اون وقت انفاق چی میشه؟ آسان میشه لذا این اولین عرض به خدمت شما دلیل هست و تعبیر هست آمنو بالله و رسوله و انفقو مما جعلكم مستخلفین فی خرج کنید از آن مالی که خدا را قرار داد جانشین در ام مال اللهم آلوسی میگه فرماید که اون مالی که به دستمان هست خدا این را چه تعبیر میکند؟ تعبير مي جعلكم مستخلفين عبر جل شانوه عما عم بايدين من المال بذلك. إن تعبيره خدا مي تحقيقا للحق يكواقية والترغيب في الانفاق ترغيب مي ما مارا بانفاق چطور فإن من علم أنه أنها لله تعالى هر کس مي دونه مال خداست وإنما هو بمنزلة الوكيل اما من بندك بدست من هست من را خدا وكيل قرار داده کی استرفوا ال ما عین الله تعالی من المصارف هر جا که خدا تعیین کرده از مصرف مصرف اونجا مصرف کنم وقتی انسان این دیدگاه را داشته باشد هان علیه الانفاق انفاق چی میشه آسان میشه راحت انفاق میکنه لذا الله می, اللہ می فالذین آمنوا منکم هم بشارت هم ترغیب فالذین آمنوا منکم انهای که آمنو منکم ایمان میاورندت شما یا بر ایمان استقامت میکنند بر ایمان مداومت میکنند و انفقو و خرج میکنند در راه الله لهم اجر كبير. برای این انسانها ها اجر بسیار بزرگ هست پاداش بسیار بزرگ هست و ما لا تنفقون فی سبیل الله اینجا خدای عز و سرزنش میفرماید مالکم لا تؤمنون بالله سرزنش میکنند اونهایی که بر ایمان صبات ندارند و خرج نمیکنن در راه الله و مالکم لا تؤمنون چی شده شما را ایمان نمیآورید به خدا بعضی مفسری میگند که ایمان منظور اون چیزی که ایمان از شما میخواهد یعنی انفاق چرا نمیکنید ما لكم لا تؤمنون بالله والرسول والرسول يدعوكم در حالك داعية شما شمار فرامي خاند رسول الله شمار دعوت مده لتؤمنوا بربكم تاك ايمان بياوريد بربتان وقد اخذ ميثاقكم ان كنتم مؤمنين و شما پیمان هم گرفته خدا پیمان گرفته در وادی الاسطق که شما ایمان داشته باشید این دو تا داعی ایمان است یکی رسول الله و یکی خدا پیمان گرفته چرا پس بر ایمان صبات نشان نمی دهید اون ایمانی که خدا میخواهد هو الذي ينزل على عبده آيات بینات ليخرجكم من الظلمات الى النور هر این رسول صلی الله علیه وسلم که شما را دعوت میده با چه ابزاری خداوند اون ذاتی است که نازل می فرمای بر بندش آیات بینات آیات قرآن دلائل تاک کہ بوسیلے این آیات و بوسیلے این دعوت الى الحق شمار استاریکی ها برهانه دو بسوی نور دعوت بده این نکته هم قبلا گفتیم که نور مفرد آمده ظلمات جمع آمده چون راه های گمراهی زیاد است راه بی ایمانی و بی دینی زیاد است اما راه نجات و راه ای ایمان یکی هست به خاطر نور مفرد آمده و این الله بكم لراؤوف رحيم همانا خداوند نسبت به شما بندگان رافت دارد و مهربان است عنایت داشته باشید این رافت و مهربانی خدا که اولا در وادی ارواح خدامت از ما پیمان گرفت و قد اخذ کم بعدا به اون پیمان بسنده نفرمود پیغمبری را فرستاد که این پیغمبر بیاید و شما را خوب راهنمایی کند درست راهنمایی کند لذا الله چرا این همه تشکیلات را بخاطر شما بندگان تشکیل داد به خاطر اینکه نسبت به شما راوف و رحیم هست مهربان هست رقفت لطف دارد نمی خد شما به سمت سوی عذاب و نافرمانی خدا برید و ما لكم الله تنفقوا في سبيل الله و انجب مالكم لا بالله عتاب بود بر ایمان نیاوردن یا بر مقتضا ایمان عمل نکردن یا بر ایمان استقامت نکردن و حال عتاب هست برای اینکه چرا خرج نمی کنید این دلیل دوم و تعبیر دوم خرج کردن است تعبیر اول این بود که خرج کنید چون خدا شما را خلیفه قرار داده اما تعبیر دوم اینه که چرا خرج نمی کنید چونکه اگر خرج نکنید فردا این برای تو میماند نخیر نه تنها مال تو بلکه میراث تمام آسمان ها زمین برای خدا میماند تو خرج بکنی یا نکنی برای خدا میماند پس بهتر نیست خرج کنی این تعبیر دوم و دلیل دوم و توجیح دوم خرج کردن لذا الله عزوجل و جل میفرماید که ان الله يرث كل شيء در این تعبیر چی می وارث هر چیز کیه است خدا است بقیه همه ما میمیریم ان الله يرث كل شيء همه این دنیا با تمام اموالش برای خدا میماند فلا يبقى لاحد مال برای هیچ کس از شما مال نمیماند فاذا كان كذلك وقتی که جنین هست فانفاقه بحيث انه يستخلف عوزا وهو الصواب اولى پس وقتی برای خدا میماند قبل از اون خودم خرج بکنم تا که خدا به من عوضی هم بده این بهتر نیست لذا خداوند با این تعبیر و با این دلیل مارا میفهماند که خرج کردن در راه من بہتر است وما لکم اللہ تنفقو فی سبیل اللہ چه شده شما را که خرج نمیکنی در راهی الله، در حالی که ولیلہی میراث السماوات والارض فقط و فقط برای الله است میراس آسمان ها و زمین میراس سما و زمین برای خدا میماند لا يستوی منكم من انفق من قبل الفتح و قاتل و بعد خداوند عز و جل بیان میفرماید که خرج کردن شما متفاوته بستگی داره شما چه زمانی خرج میکنید یکی هست که خدا مال زیاد داده سروت زیاد داده سرمایه زیاد داره همه مردم شکمشون سیره خب در این زمان خرج میکنه یکی هست در زمانی خرج میکنه که هیچی پیدا نمیشه همه چیز گران هست همه چیز قحته یافته نمیشه برو بگرد تو بازار نمیتونی پیدا بکنی بعضی وقتها بعضی از خوراکیها کمیاب میشه. همه بعضی از بندگان در همی شرایط می دونند اینها را از هر جای شده پیدا می کنند و نه اینکه ذخیره زخیره بکنند بلکه اینها را پیدا می کنند و بین مردم تقسیم می خرج می کنند. سبحان الله، این چقدر آجر داره؟ لذا خداوند می فرماید که خرج کردن متفاوته درجات شما هم بر اساس خرج کردن متفاوته مثلا، بعضی ها بودند که قبل از فتح مکه خرج کردند اون زمانی که مسلمانان در زیق بودند در تنگنا بودند بعضی ها مثل ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ که بعضی میگن اشاره به ابو بکر است اصلا قبل از هجرت چهل هزار درهم داشت همه را در راه خدا خرج کرد فقط غلام و برده خرید چون که مسلمان شده بودند و ما باقی شش هزار درهم ماند. اون را در راه هجرت رسول الله خرج کرد هیچی براش نماند ما بعضی ها هستند که بعد از فتح بعد از اینکه یست آمد بعد از اینکه فراقی آمد خرج کرد خداوند همه را میپذیرد اما تفاوت درجات هست، تفاوت مراتب هست. لذا الله می‌فرماید: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. برابر نیستند کسانی که از شما کسانی که خرج کردن قبل از فتح مکه و قاتل قبل از فتح مکه جنگیدن اولائیک اعظم درجه من الذين أنفقوا، اینها بیشتر هستن از نظر درجه از آنائن که انفاق کردن بعد از فتح و قاتل بعد از فتح جنگیدن در رأي خدا اما ان که فقط خدا اونها رو ببخشه و کل وعد الله, الْحُسْنَا حَمِرَا اللَّهُ وَادَي بحشت الحسنى حمر الله وعده بهشت فرموده الحسنى تفسیریش بهشت ده یعنی کلا المتقدمون المتناهون السابقون اونایی که ببالاترین بالاترین جایگاه و درجه رسیدند والمتأخرون اللاحقون اونایی که بعدن آمدند همیر وعده فرموده وعدهم الله جمیعن الجنت مع تفاوت الدرجات لاحقون شاء الله ما هستیم که ملحق شدیم بعدا به اون جماعت مسلمانان به جماعت اهل ایمان لذا قرطبی میگه همیر خدا وعده بهشت فرموده اما مع تفاوت الدرجات درجات متفاوته و كلما عاد الله الحسنا، والله بما تعملون خبیر. الله به اونچی کشمه عمل میکونید خبر دارد. یعنی این ترغیب اخلاص خدا تعالی باز درجات را که متفاوت فرموده بر اساس کیفیت اخلاص. هرچی اخلاص ادبالات در باشد درجات انشالله بیشتره. من ذل الذي يقرض الله قرضا حسنا این دلیل سووم انفاق است، توجیه سووم انفاق است و تعبیر سووم هست، لذا اگر خرج نمی کنی، به خدا قرض الحسن بده، وام بده، فردا بگیر، نه اینکه همین, همین قدر کدادی بگیر، چند برابر بگیر، لذا انسان وقتی بدون چین چیزی هست، هم تشویق میشه. این دلیل دیگر من ذالذی یقرذو اللها قرضا حسنا چیکاسیس ان کی قرض بدهد به الله قرض حسنا فیضاعفه له و له اجر کریم چند برابر می کنه برای او الله نه تنها انفاق عشر چن برابر می کند بلکه و له اجر کریم برای اجر معززی هست در آخرت خدا بش یک عزت خاصی می یک کرامت خاصی می بخشد این وله اجران کریم کی هست در چه روزی خدای عز و جل روز قیامت را بیان می فرماید که اون چه روزی هست یوم مؤمنین المؤمنین والمؤمنات روزی می بینیم مردان مؤمن و زنان مؤمن را ببینید جاهای دیگه سیغه مرد و زن نیامد اما اینجا آمد مرد و زن بعدا بحث در ادامه همین موضوع خدا میفهم ان متصدقین وال متصدقات کسانی که صدقی میدن از مردان و زنان معلوم میشه که اگر خرج می کنند در خانواده زن دلش جم نباشه که شوهر میده همون بث نه؟ زن برای خودش خودش بده مرد برای خودش خودش بده اگر زن جداگانه بده حتی از مال شوهر اون اندازه که برای شوهر ناراحت کننده نیست در حد معمولی کسی میاد مثلا نفتی میخواد یک مقدار نفت میده که شب مونده کسی میاد قدی میخواد روغنی میخواد تمام خانه رو خالی نمی کنه اما او را ناامید بر نمیگردان گرچه این مال مال شوهر است رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود نصف اجر به توی زن میرسه نصف اجر به اون شوهر میرسه حتی از مال شوهر اگر اندکی میده باز زن خودش هم مال داره طلا داره یه چیزی شوهر به خودش میده به عنوان جیب خرجش از اینکه خرج میکنه این جداگان 100 درصد مال خودش هست لذا زن جداگانه خرج کنه الله می فرماید یوم مؤمنین المؤمنین والمؤمنات روزی که می تو مردان مؤمن را و زنان مؤمن را یسا نورهم بین عیدیهم و بی میدود نور اونها دوان دوان هست نور اونها بین عیدیهم جلو شان و به هم دست راستشان جلو و سمت راست کنایه از اینه که هر طرفشون نور هست و این را خدمت شما عرض کنم که این نور نور اعمال است نور اخلاص است نور همین خرج کردن و انفاق است نورها باز در حدیث میاد که متفاوته یکی نور به اندازه یک درخت خرما اینقدر بلنده یعنی از قدش هم بالاتر یکی دیگه نورش به اندازه چیه؟ به اندازه قدش هست یکی دیگه نور به اندازه انگشت پاش هست یعنی خیلی کم عمل کرده همون نور داره بعضی از منافقی نور دارن در وسط جای حساس خطرناک وسط پولیسرات نورشون خاموش میشه بینور میشند چراغشون میسوزه هی hey صدا میزن بقیه مؤمنین را که شما به ما نگاه بکنید که ما از نور شما استفاده بکنیم ما بریم از زمین مسیر رد بشیم از این گردانه با رد بشیم ولی اونها میگن بریم دنیا جای نور است اینجا جای نور نیست همون جمعی افتن در وسط جهنم لذا الله عز و همین نور را بیان میفرماد که این نور بر اساس چیه بر اساس اعمال هست الله می فرماید یوم ترى المؤمنین وال مؤمنات روزی که می‌بینی مؤمنین و مؤمنات را یسعان نورهم نور دود هر چقدر بیشتر عمل کردی نور بیشتری داری ابن مسعود رضی الله تعالی عنه یؤتون نورهم على قدر اعمالهم نور به آنها داده میشه به اندازه اعمال قرآن نور هست قد جاءكم من الله نور و کتاب مبین یک نور قرآن هست روشن میکند قبرت را روشن میکند حشرت را روشن بیشتر خاندی بیشتر عمل کردی بیشتر توجه کردی بیشتر نورانی میشی این چنان نوری هست که در همین دنیا هم قلب انسان را روشن میکنه در اون دنیا هم لذا الله می فرماید یسعا نورهم بین ایدیهم و بی ایمانهم اليوم تکریم مؤمنا بشراکم اليوم مجد باد امروز ای مؤمینین جنات تجری من تحت ها الانهار بیان بشرا مجد چیه؟ مجد برای اون بهشتی اون جناتی که جاری هست از زیر نهرها از زیر نهرها خالدین ایش در اون جنات میمانند ذالک هوا الفوز العظیم این فضیلت بهشت از این هست فوز و رستگاری بزرگ یوم یقول المنافقون والمنافقات حال ببینی وضعیت نور منافقین را که ارز کردم توضیح دادم. ترجمه یوم قول المنافقون والمنافقات روزی کمی گویم مردان منافق زنان منافق للذین آمنو می گویم بمؤمنین انظرونا نقتبس من نوركم بما نگاه کنید ما اقتباس می کنیم می از نور شما یعنی سوی ما نگاه بکنید بلا تشمیق تو جاد ماشینی نورش خراب میشه خاموش میشه سعی میکنه ماشین های دیگه بیان در ذائ نور اونها و در پرتو نور اونها به مسیر ادامه بدهند اینها چنین حالتی میخوان میگن شما به ما نگاه کنید تماس شما نور بگید چون مؤمنین دیگه رد شدن رفتن اینها پشت سر موندن اینها نورشون تمام شد اونها چی میگوین مسلمانان اینا میگه انظرونا منافقین میگن به ما نگاه کن اقتباس میکنی میگیریم از نور شما قیل و جعو وراکم گفت میشه از طرف ملائکه یا از طرف مؤمنین ارجع وراکم برگردی پشت سرتان در دنیا فلتمی سونورا اونجا تلاش کنی برای خودتون نور بس جای نور عزیزان کجاست دنیاست به همین خاطر بعضی میگن این زندگی ارزشی نداره نه زندگی خیلی ارزش داره اینجا اگر کسی ارزشش را بدونت خیلی ارزش داره اینجا انسان میتونه برای خودش کل نور جمع کنه کل توشه جمع کنه الله یک نور هست الحمدلله یک نور هست الله اکبر یک نور هست یا به تعبیری که در حدیث آمده هر یکی از اینها یک درخت است پس هرچی انسان عمرش بابرکت تر بشه به شرطی که بدونت از این عمر عزیز خوب استفاده بکنه به نفش این زندگی از این جهت ارزشمند است. اونها میگن برین کجا دنیا برای مرگ انسان آرزو نکند این زندگی یک فرصت تلائی هست یک غنیمت ارزشمندی هست که انسان میتواند سرنوشت اخروی خودش را تغییر بدهد با یک توبه خالصانه با طاعت و بندگی مخلصانه برای الله. خیل ارجعو ورائکم گفت میشه برگردی پشت سرطان فلتمسو نورا اونجا نور تلاش کنید التماس کنید جستجو کنید بعد از این مکالمه بین اینها یک حائلی یک مانعی گذاشته میشه فضرب بینهم بسور له باب زده میشه بین مؤمنین و منافقین سوری یعنی دیواری حائلی که اون دیوار له باب دری داره اون طرف دیوار بهشت باطنه فيه الرحمة باطنش و درونش در آن رحمت یعنی جنته وظاهر من قبله العذاب وظاهرش این سمتش جلویش از جانب او عذاب است یعنی جهنمه جلوش جهنم پشتش بهشت بعد از جهنمه و این منکم الا واردوها هیچ کس از شما انسان ها نیست مگر وارد اون بهشت میشه یعنی از روی بهشت عبور میکند بهشت را ببخشید از روی جهنم عبور میکنه. جهنم را مشاهده میکند پس جهنم اول هست بهشت بعدن هست یوندو نه هم الم نک معکم؟ این منافق صدا میزنند مگر ما با شما نبودیم در دنیا ما رفیق شما بودیم در کنار شما بودیم در صفه شما بودیم در جماعتش ما بودیم چرا بی ووفی میکنیم ما را ترک میکن؟ ینادو نه هم الم نک معک آیا ما نبودیم در دنیا با شما از نظر اعال از نظر تئاعتات؟ قالوا بلا انهم يقولون بل اشما بما بوديد ولكنكم فتنتم انفسكم اما شما خودتون را در فتنه و مصیبت واقع کردید با اون نفاق درنگی با نفاق درنگی خودتان را در فتنه واقع کردید وتربصتم ببین این از از عادات منافقین و صفات منافقین امروز منافقین هستند شما بارها عرض کردم دنبال عبدالله ابن ابی و رفقایش نگردید مصداق هر امروز پیدا کنید اینهایی که انتظار دارند برای مسلمانان چی انتظار دارند انتظار حوادث انتظار مصائب انتظار مشکلات اگر مسلمان به نوائ می رسد میره چرب زبانی میکنه میره سوگند یاد میکنه من با شما هستم من در کنار شما هستم چون موقعیتش را تو همین میدونه، سیاستش را اصلا اووض میکنه؟ اما منتظر که کی مسر بشه که براش بلای بیاد که دوچار فتنه بشه، که دوچار بر شکستگی بشه، کی نمیدونم دشمنان؟ حمله کنن این را از بین ببره یعنی همیش آرزو و تمنای چی داره شکست مسلمان را داره و تربستم انتظار می برای ما مسلمانان برای مؤمنین ای بالمؤمنین الدوائر برای مؤمنین چه انتظاراتی شما می کشیدید حوادث را را ورتبتم این دلیل دیگرش بود ورتبتم چون شک داشتید در باره حقانیت اسلام شک داشتن در باره حقانیت قرآن شک داشتن چونکه غرب زده هست و تعلیم یافته دانشگاه کفار هست دیگه اون چیزی که در روح و روان و در مغزش هست اون تعلیمات هست نیامد یک روز پای قرآن نیامد از تعلیمات اسلام چیزی یاد بگیره نیامد خودش را با معارف دینی آشنا بکنه وغرت کومل اماانیی و شما را فریب داد آارزوها ارزوها،مررت از ارزوها, آرزوها, آرزوها یکثری اروهای پوچ تخیولات شما، تمناهای بیجا، مثلا فکر میکرد که امروز نفردا، بالاخره این به مسلمانان برچیده میشه، به سات مذهبییوم برداشته میشه۔ روز روز دنیا پیشرفت میکنه کنه آینده اینها جایگاهی ندارن در همون زمان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم هی منافقین انتظار می که اسلام که شکست بخورد و این آرزو هم به دل داشتن و غردکم الامانی شما این آرزوها فریب داد چون در این آرزوها شما شیطان نقش داشت اللہ ما آلوسی نمیشته و غردکم الامانی یعنی الامانی و الفارغه التي من جملتها الطمع في انتكاس الاسلام یک سری آرزوهای توخالی پوچ مثلا از جمله اون آرزوها سردیگونی مسلمانان بود شکست مسلمانان بود این آرزو را به دل داشتند مثلا مسلمانان رفتند در سال 60 خاندیم در سوره برای عمره که نشد حدیبیه اتفاق افتاد این آرزو داشتن دیگه هیچیک از اینها سالم بر نگردد اینو آرزوها را به دل داشتن و غررتكم الامانی حتی جاء امر الله حتی که امر خدا آمد امر خدا مرگ برای شما آمد و غرركم بالله الغرور شما را فریب دار نسبت به خدا فریب دهنده فریب دهنده اصلی چیه شیطان تفسیرش؟ شیطان شماره فرید داد لذا فالیوما لا يؤخذ منكم فدية الله می امروز ای منافقان از شما هیچ فدیه هیچ رشوه قبول نمیشه گرفت نمیشه ولا من الذين كفروا وناز عن هيك کفردان مواكم النار جایگاه شما آتش است تون ب از آتش جایی نداره هم مولاکن اون آتش مولا شماست. مولا به من حامی یعنی او از شما حمایت می کند حفاظت می کند. بقیه مردم چه چیزهایی از اونها حفاظت میکنه چی هوای خونک سایه مرغوب از کنم نسیم بسیار ملام اما از اینها کی حمایت میکنه آتش و دود آتش و شولی آتش و بئس المصیر الله نجات بده جای رجوع بسیار بدی هست ببینید خدا از و در این آیات بیان فرمود که در اون روز نور هست اما نور مالکی هست مال کسانی که مؤمن باشند و عامل باشند آمنو و عاملو کسانی که نیستند نور ندارند اما خیلی از مؤمنان میگوین این آیه بعدی زجر برای مؤمنین است خیلی از مؤمنان هستند ایمان دارند تنبلند برای توسعه نور برای بیشتر شدن اون نور کوشش نمی کنند کسلند تنبل هستند ضعیف هستند لذا الله تعالی اینجا زجر بیان میفرمد برای این مؤمنین که ای مسلمان ای مؤمن، آیا هنوز زمان اون فرار نرسیده که در مقابل این نصیحت ها و پند و اندرز های الهی دلت تکام بخوره قلبت نرم بشه این آیا واقعا آیه تکام دهندهی هست در داستان های گذشته که اینجا فرصت داستان گفتن نیست باید حداقل اقل آیات را ترجمه بکنیم می بسیاری از اصلاف ما از اولیاء الله بزرگان مثل عبدالله ابن مبارک یا فزیل ابن عیاز اینها قبلا در مسیر درست نبودن در مسیر نادرستی بودند این آیات بگوششون که خورد اینها کلا همین یک آیه مسیرشون رواز کرد این یک آیه از این رو به اون رو کرد کلن هدایت شد کلن از عیاشی دست کشید کلن از سرقت و رهزنی ای... ای... فوزیل ابن عیاز راهزن بود چنان راهزنی بود که مادرها شب بچه نمیخوابیدن میخواستن لالایی بکنن بچه سر و صدا میگفت کر... می فوزیل بیا تا میگفت فوزیل بیا بچه میخوابی میترسید چنان فوزیل خطرناک بود اما یک شب میره پشت بامی میخاد که دزدی بکنه خونه صاحب خانه یکی از اهل دل هست اونجا داره تلاوت میکنه و اتفاقاً همین لحظه این آیه تلاوت میکنه که الم یعنه هنوز زمان این فرا نرسیده فوزل احساس میکنه رب داره به من میگه همونجا گریه میکنه میگه بلا قد آن بلا قد آن بلا قد آن هر وردگار بله الان زمان اون رسیده بس دیگه توبه میکنم از همون جا برمیکرده و زندگیش متحول میشه لذا این آیه آیهی هست که اطاب برای مؤمنین و تنبل های مثل ما هاست و در واقع ما تکان بده قلب ما را باید دیگر گم بکنه الله چی فرماید علم یعنی آیه زمان و آن آن نرسیده وقت آن نرسیده للذین آمنو وقت آن برای مومنین برای مسلمانان نرسیده ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ ان که خشو اختیار کنه نرمش اختیار کنه فروتنی اختیار کنه لذکر اللہ برای پند و نصیحت الهی این پند و اندرزهایی که خدا در این ذکر در این قرآن که سراپا پند است آیا نمیتونی از این الان وقتش نرسیده که پند بگیری؟ وما نزل من الحق وان شاء الله أزحق نازل فرموده لذا لذكر الله أجر مراد قرآن باشه وما نزل من الحق وهو في تفسيرش هذ لذكر الله مراد ذكر ويادي إلىه باشات وما نزل من الحق مراد قرآن هذ یعنی آیا وقتی آم فرآن رأی انسان دلش در مقابل یاد الله و در مقابل کلام الله فروتن بشه؟ ولا يكونوا كالذين أُوتُوا الكتاب از دلائلی که خدای عزوجل در قرآن ذکر میکند اهل کتاب را بکسرت برای من و شما از اوصاف اونها میگه از خیانت های اونها میگه از خباثت های اونها میگه یکی از دلایل اینه که من و شما مثل اونها نباشیم از ملاهایشون میگه تا ملاهای ما مثل اونها نباشند دین فروشو کتمان نکنند اگر از عوامشان میگه عوام ما مثل اونها نباشند پس اونها چی بودند اللہ می فرمات که مثل اہل کتاب نباشید که آرزوهای بسیار طولانی در این دنیا داشتند می‌خواستن فقط زنده زندگی کنن زنده بمانند یود احدہم لو يعمروا الف سنه هر یکی دوستش هزار سال زندگی کنه این آرزوی طولانی اینکه ما گاهی ارزوهای طولانی داریم برای دوی سال خودمون من بر ناممه ریزی میکنیم این دل را سنگ میکنه قرآن میگه. لذا به دنبال چیزهایی باشین که دلمون نرم بشه، نه چیزهایی که دلمون را سنگ و سخت میکنه. لذا الله میفرماید ولا والای کونو اوت کلین مؤمنین نباشند مثل کسانی که کتاب داده شدند اهل کتاب چی بودند هی گناه هی تعدی ای معصیت ذلک بما عصوا و كانوا يعتدون خاندیم فطال عليهم الامد طولانی شد برای اونها زمان یعنی آرزو آرزوی عمر طولانی زیاد شد ام مدت زیادی زندگی کنند این برای اونها طولانی شد لذا به سبب این آمد این آرزوهای طولانی موندن فقست قلوبهم دلهاشون سنگ شد به خاطر همین سنگ دلی ایمان نصیبشون نشد فقست قلوبهم و كثير منهم فاسقون این سماره قساوت بسیاری از اونها از جاده حق خارج شدند فسق میگویند خروج از حد و حدود خداوندی. لذا الله عز وجل میفرماید که شما اونطور سخت نباشید، اونطور سنگدل نباشید، اونقدر در گناه و در معصیت غرق نباشید. بیاید سوی خدا برگردید. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها بدانید همانا الله زنده می کند زمین را بعد از مردنش یکی از دلایلش یکی از از کنم توجیهات و احتمالاتش اینه یعنی که بمیرید دوباره زنده می شید این زمین بعد از مردنش دوباره زنده میشه یعنی اینکه از آثار قدرت الله زنده می کنه زمین را بعد از مردنج قد بینا لكم العیات همانا ما توضیح دادیم برای شما آیات را نظائر را لعلکم تعقلون شاید شما عقل و خیرت داشته باشید به عقل بیایید از عقل کار بگیرید لذا بعضی میگویند که این متعلق به انفاق از تعبیر سووم هست. خدا فرمود قرض حسنه بدهید. چون که خداوند اززوجل شما را با این انفاق کردن و خرج کردن خار نمی کند. شما را الله اززوجل نادار و فقیر نمی کند. خدا زمین را احیا می کند. زندش می کند. و هر وقتی که انسان ها زیاد انفاق میکنند آبادانی هم بیشتر میشه برکات هم بیشتر میشه این المصدقین والمصدقات این بازم ترغیب الى الانفاق متعلق به همین تعبیر سفوم هست همانا صدق دهندگان چه مرد باشن چه زن اصلش بوده متصدقین والمتصدقات مردانی که صدقی میدهند و زنانی که صدقی میدهند و اون مردان و زنانی که به خدا قرض حسن میدهند ان ها بدونن که این قرض حسنشون این صدقیشون زائی نمیشه زخیره میشه چند برابر زخیره میشه یکی بده حفظت تا بگیر حلال اقل خاندیم در سوره بقره. این المصدقین والمصدقات همانا مردانی که صدق میدهند و زنانی که صدق میدهند و اقرض قرضا حسنا و قرض میدهم به الله قرض حسن یضاعف لهم چند برابر میشه برای آنان نه اینکه انسان این چند برابر میشه ولهم لهم اجر کریم برای انها اجر کریم هست اجر و پاداش معزز هست دیگه خدای تعالی خدا بهتر میدوند چه نعمت هایی چه جایگاه های با عزت و با عظمتی برایشون آماده کرده که نه چشم دیده نه گوش شنیده نه انسان تخیل و تصورش رتبال کرده وَالَّذِينَ آمَنُوا بالله وَرُسُولِهِ همه اینها صدق وغیر و غیره در واقع نشأت میگیرد از ایمان به خدا وقتی ایمان باشد اون وقت تمام اعمال برای انسان آسان میشه لذا ترغیب ایمان هست. والذین آمنوا بالله ورسله رسوله آنهاي ایمان دارن با الله و رسول الله اولائک هم صدیقون والشهداء عند ربهم. اینها در واقع اینها هستن صدیقون و شهدا نزد ربشان اینها یعنی درجات متفاوتی کسب میکنن. مثلاً به درجه صدیقیت میرسند. به درجه صدیقیت میرسن صدیق اون کسی را میگن که حمتا از نبی خدا و از دین خدا حمایت میکند از اول تا آخر اون زمانی که هیچ کسی نیست و نیاز هست به حمایت اون زمان همه مال و جانش را بذل میکند مثل ابو بکر صدیق رضی الله عنه و شهدا شهدا به چه کسانی میگویند الشهید البازل نفسه یعنی که نفس خودش را والمال مال فی سبیل الله مال خودش را صرف میکنه خرج میکنه جان میده بعضی میگن شهید به این معنی هست اما بعضی میگن نه شهید به عامه مؤمنان گفته میشه اونهایی که شهادت میدن به وحدانیت الله منظور صالحین هستند شهد الله انه لا اله الا هو و والولو العلم اولو العلم هم شهید هستند گواه هستند مؤمنین هم گواه هستند پس گواهی کسانی که صالحین هستند و برای توحید پروردگار گواهی میده اونها مراد هستند والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم برا انهاس اجر وparadise انها ونور انها دار والذين كفروا اما كسانك كفر كنند وكذبوا باياتنا تكذب كنن باياتنا اولئك اصحاب الجحيم صاحبان جهنم هستند جايشون دار جهنم هستند اعلموا الحياة الدنيا لعب ولهو ان تعبير و دلیل چهارم انفاق آخه خرج نمی در راه خدا آخر چی میشه همین مالی که شما دارید دیگران هم این مال را داشتند مراحل مختلفی سفری کردند شما هم به همون جا می رسید ببینید این مال و این زندگی دنیا که انسان دل بسته و وابسته شده از چهار خال، حال خالی نیست یک لعب و لحو لحو لعب بازی و بیهودگی و زینت زینت هست زیبایی ظاهری سفم و تفاخرم بینکم بین هم دیگر فخر فروشی فخر کردن چارم و تکاثرم فی الاموال والاولاد در مال و اولاد از هم دیگر پیشی گرفتن سبقت گرفتن بکسرت جمع کردن آخر چی میشه؟ آخر مگی میمانه نه همین ها از بین میره و بعد اون چیزی که جالب از هر مرحله دومی که میاد مرحله اول از بین میره و بعد به مرحله دوم وقتی میرسی به مرحله پیش خندت میگیره و میدونی که اون مرحله من خوب عمل نکردم مثلا ببینید این چار مرحله مال خود انسان و مراحل زندگی انسان است همه ما این مراحل را یا سپری کردیم یا می‌کنیم اول لعیب و لهون انسان بچه کی هست بزرگترین آرزو آمالش چیه بازی تو کجا بیهودگی کردن با خاک بازی کردن با نمیدونم یک تایر و لاستی کی بازی کردن با یک آلونا کی بازی کردن بچه همین همینه لذا ابتدائی زندگی ہے؟ فکر میکنه که دنیاش همین بازیه بہترین و ترین چیز همین بازیه اگر دستش را بگیر بیا بخواب گریم میکنه که نمیزار بازی بکنم لذا مرحله اول زندگی چی هست لعبون و لعبون مرحله دوم کمی بزرگتر میشه، نوجوان میشه، متوجه میشه که نه، نباید تو خاکها گلالود بود و آلود بود و نباید دکورم را درست کنم، باید ظاهرم را درست بکنم، فردا باید ازدواج بکنم، لذا این مرحله دوم جوانی و نوجوانی هست وزینتون، فقط به اتویش میرسه، سای میکنه لباس خوب، کفش خوب، نمیدونو ساعت خوب، و مدل خوب موحایش چطور باشه الان که دیروزش فکر میکنه به اون زمان بچگیش فکر میکنه فکر میکنه من دیوانه بودم تو خاکا بازی میکردم نه باید انسان بروز باشد پس این مرحله دوم زینت هست که هر کسی این مرحله را هم گذرانده و بعد مرحله سوم سو که انسان جوانی را پشت سر بگذاراند و میان سالی برسد تقریبا چهل به بعد و تفاخرم بینکم این زمان زمان تفاخر است که انسان میخواد فقط افتخار بکند دوست دارد که فقط یک چیزی داشته باشد که باعث فخرش بشه قبلا مثلا برای اون زینت خودش هرچی مصرف میکرد مال می گذاشت وقت می گذاشت تا که فقط ظاهرش خوب بشه الان نه، الان مثلا همون مال باعث افتخارش میشه، مال را نگه می دارد سعی می کنه در این سن انسان به پست برسه به منصب برسه چهل به بعد دلش می اون مجموعی که هست رئیسی اون مجموعه باشه اون گروهی که داره سرداری اون گروه بشه در هر جایگاهی که هست می خواد بکنه پس این همون مرحله تفاخر است که انسان ها بعد از مرحله نوجوانی دارند و تکاثر فی الاموال و الاولاد این وقت دیگه پولش را به خاطر اون دکورش مصرف نمیکنه اما به خاطر و به خاطر چیزی که باعث افتخار بشه حتما و مرحله چهارم مرحله پیری هست مرحله پیری فقط انسان میگه هل می مزید هرچی بیشتر بشه دیگه هزینه نمیکنه دیگه سعی میکنه که چی فقط زیاد بشه حساب بالا بره تو بانک بیشتر زمین بگیره بی بیشتر باغ داشته باشه هر هم فرزند و اولاد زیاد باشه هم مال زیاد باشه مال را هرگز خرج نمیکنه و میگه من تا دیروز دیوانه بودم که مال را برای چیزهای مصرف میکردم الان شاید لباس درست حسابی به تنش نباشه کفش درستی به تنش نباشه دلش نمیاد که بخره میگه فقط جمع بکنم لذا این مرحل مرحله ای هست که به تمام مراحل گذشته خندش می گیره. اون مراحل رد مراحل دیگ میدانه. لذا الله می فرماید زندگی دنیا همینه که انسان یا مشغول لح و یا مشغول زینت و زیبا سازیه یا مشغول فخر و غرور هست یا مشغول جمع کردن و حلم مزید هست. و مثالی الله بیان فرموده برای این مثال کشت را و زراعت را بیان فرموده کشت و زراعت هم ابتدایش چی هست یک جوانه کوچلویی هست تازه که از زمین سر بیرون می زند خیلی ضعیفه نحیف لاغره بعد کم کم خوب میشه قوی تر میشه بعد این کشت فقط زیبایی دارد فقط ببین هر کی میره کنارش عکس میگیره امروز خیلی مردم از مناظر زیبا از مناظر سرسبز میره اونجا عکس میگیره از بس که زیباست این مرحله بعد زیبایی هست نه و بعد کم کم کم کم این به تبدیل میشه به مال درو میشه اما بعد از درو چی میماند اونجا اشغال میماند زباله میماند خص و خاشاک می معنی چیزی دیگه ببین این مرحله اول تا مرحله آخر که خست و خاشاک است انسان هم همچینین دنیا هم همچینین لذا الله می فرماید کم ارثل غیثین مثل اون بارانی که اعجب الكفار نباته شاد می کند کشاورزن را کفار من کشاورزن نباتو نباتش یعنی ذرعت تشکی میکارت ثم یهی جو سپس رشد می کند بالا می زند فطره و ممسفررم می اون اونرا زرد شده ثم یکونو حطامه سپس می اون حطام شده یعنی ریز ریزه شده خص و خاشاک شده حطام چیز میگن زیر لگت ها ل شده بعدا دیگه خرمن کوبی میشه اونجا فقط کاه میمانه خص و خاشاق می ماند لذا مراحل دنیا عینن مثل همین مرحله هست آخر انسان زیف میشه نحیف میشه لاغر میشه آخر می میرد و دیگه ارزشی جسمش دنیا ندارد باید ببرن زیر خاکش کنند لذا می فرماید این مرحل دنیا اما آخرت را نگاه کن آخرت هم دو حال داره وفی الاخره عذاب شدید در آخرت از دوحال خالی نیست یا عذاب شدید است عذاب سخت است و مغفرت من الله و رضوان و یا مغفرت است جانب الله و رضوان رضای پر وردگار است یا مغفرت یا رضوان و مل حیات لذا ان چیزی که انسان رنمی نمی گزارت که بچوی مغفرت بره و نمی گزارد که از عذاب شدید نجات بیابد معنی هست این زندگی و شیرینی دنیاست می ببینید که از این کالای فریب فریب نخورید ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور نیز زندگی دنیا مگر کالای فریب هست اسباب فریب دادن است. بنابراین بر این می کند البته کالا فریبلی لمن عمل بها ولم یعمل للآخره کسی که فقط با دنیا کار میک و برای دنیا کار می کند برای آخرت هیچ کاری نمی کند. اما فمنش تغلف دنیا یطلب الآخره بعضیا هستن که خوب بلده معشاءالله الله بشون اقل داده فراست داده دنیا مشغول میشن اما به وسیله همین دنیا آخرت میخواند. به وسیله همین دنیا آخرت خودشون راضی میکنند آباد میکنند. به وسیله همین دنیا خدای خودشون را راضی میکنند. مثلا دنیا را در مسیر حق مصرف میکنه. دنیا همان گونه که الله فرموده مصرف میکنه. پس فمننش تغلف دنیا یتلوبل آخره. کسی در دنیا مشغول میشه که آخرت را میطلبد فهی له بلاغ الی ما هوا خیر من پس این دنیا او را میرساند به چیزی که بهتر از این دنیاست یعنی آخرت لذا اللهمی فرماید وما الحیات الدنیا ایلا متاع الغرور بعد از این نصیحت و پند خداوند عز و جل ترغیم میده بسوی آخرت و شتاب به آخرت و آماده کردم برای برا آخرت که من جمله اون آماده کردم برای آخرت موضوع این سوره هست یعنی انفاق انفاق و جهاد سابقو الى مغفرت من ربکم سابقو از باب مفاعله هست مسابقه شما از خواست مفاعله را خاندید که وجود فعل و انجام فعل از طرفین باشه یعنی همهتون از هم دیگه چی بکنید پیشی بگیرید از هم دیگه جلو بزنید. بعد مسلمان ها ممینین در این مسائل با هم دیگه رقابت داشته باشند و غبته بخورم به حال دیگر که او از من بهتره. او بیشتر از من مصرف میکنه اون بیشتر از من نماز میخونه اون بیشتر از من توفیق داره سابقو الی مغفرت من ربکم بشتابید بسوی مغفرتی که از جانب رب طه هست و جنت و وبشتابید بسوی بهشتی که عرضها کا عرض السماء والارض فراخی به اندازه فراخی آسمان و زمین است عرض دو معنی داره یکی فراخی وصعت البته نبی اندازه زمین و آسمان ولی بزرگترین چیزی که من و تو دیدیم و چشم ما دیده آسمان و زمین است لذا وصعتش بی این اندازه ولی خیلی بیشتر یعنی که عرض همین عرض ما که طول هم داره عرض میدونید همیشه از طول کمتره عرضش وقتی که به اندازه زمین و آسمان از طولش چقدر است چند برابر است اعدت للذین آمنوا بالله و رسوله این آماده شده این بهشت مستحق بهشت برای کسانی که ایمان آوردن به الله و رسول الله ذالک فضل الله اگر بهشت رفتی و نصیبت شد عجب نکون غرور داشته نباش این برای رفع حجب است این فضل الله است بهشت رمیده یاتیه من این سبب حقیقی بهشت است والله ذو الفضل العظیم الله دارای فضله عظیم هست خب این تعبیر چارم برای انفاق بود یعنی خرج نکنی آخر دنیا چی میشه آخر بلاخره تبدیل به یک توفاله و زباله میشی پس بهتر نیست که خرج کن که خودت هم سود ببری ما می مصیبت این تعبیر پنجم هست و دلیل پنجم انفاق است. بعضی وقتها مردم پیشگیری میکنن از حوادث بزرم خودشون سرمایشون را نمیدند به کسی نمیدند خرج نمیکنه میگه به سختی درد ما میخوره لذا میگه فردا نیاز میشه مریضی هست درمانی هست نمیدونم مشهد رفتنی هست لندن رفتنی هست تصادفی هست لذا انسان بعضی ها برای آینده برنامه ریزی میکنند الله عزوجل و اون چی که از سوی خدا بیاید اون را شما نمیتونه جلوش را بگیرید اگر موت مقدر باشه موت میاد، اگر مریضی زمین مقدر باشه او میاد، ما اصابه این مسیبتیم فی الارض، نمی رسد هیچ مصیبتی در زمین ولا فی انفسکم و ندر وجود شما، کسی میگه شاید فردا بالاخره ضرر کردم، فردا ورشکست شدم، الله می هر حادثه بیفته چه در مال شما، چه در جان شما، الا فی کتاب مگر در لوح محفوظ است من قبل ان نبرئها قبل اینکه ما اون رب وجود بیاوریم بمعرض وجود بیاریم قبل از اون همه در لوح محفوظ در کتاب ما نوشته ان ذلك على الله يسير همان این بر الله آسان هست که بر اساس اون که نوشته الله عزوجل مقدر می فرماید اما پیشا پیش به شما اعلام میکند. بعضی میگه اینجا لکیلا فعلش مقدر هست. اخبر ناکم. ما به شما پیشاپیش خبر دادیم. این حکمت اطلاع هست. که ای مسلمان بدان اگر فردا هر خوشی بیت میرسه یا هر مصیبت بیت میرسه. این همه قبلا پیش بینی شده هست. خوشی اگر رسید، جشن رسید، مال رسید، خیلی مغرور نباش. چون از قبل خدا نوشته اگر مصیبت رسید خیلی حزین نباش و ویلا نکن لکی لا تاسوا علی ما یعنی ما به شما خبر دادیم تا اینکه غم نخورید بر آنچه که از دست شما رفت ولا تفرح و همچنین مغرور نباشید فرح بمنای غرور است. بما آتاكم با آنچه که ما شمردادیم، الله آتاكم الله شمرداد. والله لا يحب كل مختال فخور. همین همه لا تفرح غرور نباش، چون خداوند دوست نداره هر مختال فخور را. مختال اون هست که غرورش داخلی هست، درونی هست. تو دلش خودش را از همه بالاتر میداند فخور اونه که با اعضا و جواره هم غرور خودش را نشان میده سرش بلند سینهش جلو هست با یک حالت متکبرانه و غرور، مغرورانه میره با مردم طوری صحبت میکنه که مردم عددی نیستند این فخور است. پشت ماشین وقتی که نشسته چنان ورم میکنه که اصلا نزدیکه که فرمان تو کمش بره. یعنی اینقدر مردم مغرور نباید باشه به خاطر چی؟ یک مسئلی مسائلی که آرزی که خدا به من داده به اون نداده لذا الله عز و مختال و فخور را دوس نداره کسی که درونش تکبر هست و کسی که بیرونش تکبر هست اما بعضی گفتن مختال اون مغروری را میگن که بر فضائل داخلی چیزی که در درون هست بر اون چی میکنی؟ غرور داری مثلاً یک شاعر خوب هستی یک عالم خوب هستی یک حافظ خوب هستی یک قاری خوب هستی یک سخنور خوب هستی بر این غرور کردن چیزی که در درون هست این را میگم مختال و کسی که غرور و تکبر داشته باشه به خاطر یک فضیلتی که در درونش نیست بیرون هست مثلا ماشین خوبی داره سختمان خوبی داره باغ خوبی داره ویلای خوبی داره برای یک سری فضائل خارجیه اگر انسان خوشحال بشه این میشه چی فخر؟allah ای حالیم هم نزدیک هستند.الله این ها را دوست ندارد. ادامه صفات وصف, وصف اوصاف مختلف مختلف اخور الَّذِينَ يَبْخَلُونَ انهایی که بخل می خودشان بخل میکنند خودشان ریالی به مردم نمی دهند وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبَخْلِ وَهَمْچینین امر می مردم را به بخل امر می یعنی معصیتشون متعدی هست بقیه هم سیگانش هم سنفاشو میگن خرج بکن یه ای تو خودت زن و بچه داری تو خودت نیاز داری تو خودت فردایی داره آینده داری ای نه خودش خرج میکنه نه دیگران را میگذارد و من یه هر کسی که پشت بدهد اعراض کند بعضی گفتن که جزا مقدر هر چی که شما مقدر میدانید مطابق اینجااف مثلا فف الله وای بر او عف بر او، تف بر او. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ اِنْ اِلَّتِ اُنْ جَزَاسِ همانا اللہ بینیاز هست وستود شده هست اللہ تعالی نیازی ندارد خب تا اینجا بخش اول بود با در انفاق و وعنایت فرمودی که خدای از و چقدر تأکید چقدر توصیه و چه تعبیرهای مختلفی بکار بردند که من و شما قانع بشیم که خرچ کنیم بخل نکنیم و حال بعد از خرچ کردن نیاز به جهاد هست از اینجا به بعد موضوع جهاد هست بخش دومی سوره و آخری سوره لقد ارسلنا رسولنا بالبینات همانا ما فرستادیم رسولمون را با بینات فرستادیم یعنی تنها ابزار جهاد با اونها نبود اولا دلائل و معجزات بینات هم به بی دلائل اطلاق میشه قبلا شما خاندید هم به معجزات که اولا همین طور مردم را قانع کنند دلائل بیارند دفم و انزلنا معهم الكتاب والميزان ما همرا با اونها کتاب نازل کردیم و قانون نازل کردیم و المیزان تفسیر واوی تفسیری است یعنی اون کتاب قانون بود برای مردم قانون زندگی زندگیشون را بر اساس دستورات همون کتاب داشته باشند و همچنین مرافعاتشون را اختلافاتشون را های خودشون را هم بر اساس دستورات همون کتاب حل و کنند این کتاب را چرا فرستادیم؟ حکمت انزال کتب و رسول لیقوم الناس بالقسط که مردم بقسط و بینصاف قائم بشن ببینید انصاف بر هست قسط دو یکی مربوط به الله مربوط به حقوق از ابن عباس رضی الله عنهما انجا شده الناس بالقسط مراد نوشته لا اله الا الله یعنی خدا کتاب فرستاد کتاب قانون زندگی هست تا به تو بفهماند که لا اله الا الله بقیه هرچی معبود دروغه فقط معبود معبود یگانه هست این انصاف هست در حق خدا و انصاف در حق مردم همینه که حق هم تلف ناشی همونتو که حق خدا نباید تلف بشه لیقوم الناس بالقسط اما بسیاری هستند که قسط سرشو نمیشه انصاف میشون نمیشه ظلم میکنند چه, چه زلم می, می چه ظلم به مردم میکنند چه به خدا میکنند و در واقع ظلم به خودید شرک میکنند و چه ظلم به مردم میکنند قانون تا خدا را قبول ندارند اونا قانون نفس خودشون را قبول دارن قانون خواهشات خودشون را پس برای چنین انسان ها و انزلنا الحدید ای خلقنا الحدید ما چرا آفریدیم آهن را آفریدیم آهن کنایه سیاست اصله. فیه بس شدید و منافع للناس که در آن بس شدید هست جنگ شدید هست وقتی که کسی قبول نکرد و همچنین منافع مردم است در آهن چه منافعی برای مردم است در جهاد بزرگترین منافع هست عدل و عدالت برقرار میشه امنیت حاکم میشه ظلم از بین میره اجحاف از بین میره جهاد اونقدر که جهاد در دنیا برای مردم نفت دارد هیچ ندارد لذا لیقوم الناس و بالقسط این منش که خداوند هاهن را و ابزار جهاد را خلق فرمود تا که مردم چیکار کار بکنند؟ مردم استفاده بکنم منافع للناس ایلو یقاتل به وسیل اونها جهاد بشه وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْسُرُهُ ورسله بالغيب حکمت دیگر انزال حديد خدای تعالی میخواد معلوم کند قبلا عرض کردم خدا که علم دارد پس علم خدا به بمعنی چیست؟ ظهور است ظاهر کردن، مشخص کردن نمایاندن پس خدای عزواجل آهن را حدید را آفرید، ابزار جهاد را آفرید، اسلحه را شمشیر را آفرید، تا که معلوم کند، مشخص کند، من یعنی به همگان نشان بدهد که چه کسی یاری میکند خدا را و رسولش را، بالغیب یعنی ندیده یاری میکند، ناصر کیه یارو و یاور دین خدا کیه الله عزوجل و به این خاطر جهاد را مشروع فرمود و الا خداوند خودش میتونه دشمنانش را قلقم کند ان الله قوی عزیز بدونش شک خداوند قوی هست خیلی قدرت دارد عزیز غالب است. اما از قوتش از غلبش از قهرش از گرفت و معاخزه مستقیم کار نمیگیره گیره میخواد دشمنان را به وسیله شما مؤمنین معاخزه بکنه تا شما همچی درجتون بره بالا جایگاه و عزت برای خودتون کسب کنید بس این شد حکمت ارسال رسول و انزال کتب و پیدایش آلات جهاد و مشروعیت جهاد در اذامه الله می فرموده لقد نوح نوحا وابراهيم ببینید اونجا لقد ارسلنا رسلنا بالبينات این تفسیری رسولنا است مراد از اون رسول کی هستن بعضی خدا نام نمیبرد مثلا ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم هما ما فرستادهم نوح را وإبراهيم را وجعلنا في ذريتهما وقرار دادهم در أولاد هر دو پیانبر النبوة والكتاب هم نبوة و پیانبری را وهم كتابها متحدد فرستادهم فمنهم محتدن این امت اجابت است بسیاری از انسان ها محتدی است بر مسیر هدایت است هدایت را دریافت و کثیر من فاسقون این امت دعوت است بسیاری از آنها فاسقان خب، این انبیار فرستادم سلسله ادامه داشت تا اینکه آخرین پیغمبر قبل از رسول الله علیه اللہ می آوریم فرماید ثم قفينا على آثارهم برسولنا سپس پشت سر هم فرستادیم بر آثار آنها رسولون را پیامبران را موسی را تمام انبیاى بنی اسرائیل را فرستادیم و آخرین پیغمبر از بنی اسرائیل و قفینا بعیس ابن مریم و ما پشت سر آنها فرستادیم عیس ابن مریم را و آتیناه ال انجیل و ما به انجیل دادیم فرستادیم انجیل دادیم تا او بیادت و جهاد کنند و دین خدا را بپیش ببرد قسط را عدل را انصاف را بپیش ببرد ایسا صلی اللہ وسلم هم اعلام کرد من انصاری الاللہ قال الحواریون صبح خاندید قال الحواریون نحن انصار الله لذا این ندا ندای جهاد بود و این لبیک اسوی انصاریون هم بر اساس چی بود جهاد بود پس دین را جهاد بپیش می برد لذا الله می وقفینا بعیسی و مریم وآتیناه الانجیل ما بعود انجیل ردادیم اما خداوند عز و جل یک سعادت خاصی برای متبعین ایسا بیان می فرمان انهایی که براستی متبع ایسا بودند که در دل اونها خداوند رعفت و نرمش ایجاد کرده خوب دقت بفرمایید در دل اونها رعفت و نرمش ایجاد کرد و جعلنا في قلوب الذين اتبعوا وقرار دادیم در دل کسانی که پیروی کردن عیسی را رافته و رحمتا رافت نرمش و رحمت ایجاد کرد و رهبانیت ان ابتداوها مسیحیان عموما نرم هستن و یهودی ها سخت هستند لتجد أن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. أما مسيحيا رفط النرمي دارن. إن أذكر دا مسيحيين أصلي. أما بعدين هم بعض أز إنسفات باقي ما ده. أما الزلالات دارن قمر أي دارن. قد ضلوا كثيرا. قد ضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سوا السبيل. كمامي خانم ولا الضالين. گمراહી دارن رافت دارن گمراهی هم دارن و رهبانیت ابتدعوها و رهبانیت را آنها ایجاد کردند ببینید رهبانیت نیست بر رحمت یعنی معنیش این نیست که ما قرار دادیم رافت و رحمت و رهبانیت را نه رهبانیت را خودشون ایجاد کردند و رهبانیت ابتدعوها یعنی اختراش کردند ما كتبناها عليهم، ما ننوشتم بر اونها رهبانيت را الا ابتغاء رضوان الله مگر ما چی نوشتیم ما نوشتیم که اونها طالب رضای خدا باشند رضایت خدا را به دست بیارند اونها خودشون استهادن برای رضایت خدا رحبانیت را ایجاد کردند اولا من این نکتر خدمت شما ارز کنم که رحبانیت در دین ما نیست رسول الله صلی علیه و وسلم فرمودا رحبانیت در این دین نیست رحبانیت و گوشگیری این دین جهاد هست در راه خدا رحبانیت چیه؟ رحبانیت اینه که انسان خودش را از زن و بچه ببره از جامعه ببره از از کنم اجتماع دور بشه بره توی غاری توی یک سراخی یک گوشه یک جنگل و جزیره اونجا فقط عبادت کنه اسلام دین اجتماعیت است بزرگترین عبادت ما در اجتماعیت است حتی عباداتی که در ان عبادات انفرادی هستند نسبت به عبادات اجتماعی هیچ اجری ندارد شما یک نماز میخانید یک نماز میخانی تنها یک سواب بیش شما سه، همون نماز رمی ری در مسجد محله تو میخانی بیست و هف سواب می سه، اون نماز رمیه در مسجد جامی میخانید چندتا سواب میره سه، پنجاه تا سواب میره اون نماز را میری در مسجد الحرام به وقت حج وقتی میخانید اونجا همه مسلمانان جمع هستن سه هزار تا ثواب بیت میره یعنی هر چی که در اجتماع باشی بیشتر بیشتره، لذا در اسلام رحبانیت نیست اما در دین مسیح بر اساس این تفسیری که عرض می کنم رحبانیت نیست الله می فرماید و رحبانیتا ابتدعوها البته دوتا ترکیب می کنم بر اساس دوتا ترکیب دوتا تفسیرم هستن و رحبانیتی که آنها ایجاد کردن ما کتبناها علیهم ما ننوشتیم این رحبانیت را برانان الا ابتغاء رضوان الله مگر ما چی نوشتیم ما نوشتیم که اونها طالب رضای خدا باشند ما گفتیم رضایت خدا را به دست بیارند ولی اونها رهبانیت را, را ایجاد کردند رهبانیت را که ایجاد کردند فما رعوها حق رعایتها این را رعایت نکردند چرا؟ به خاطر اینکه رهبانیت جنگ با فطرت است رهبانیت چیه؟ جنگ با فطرت مبارزه با فطرت خدای عزوجل در فطرت ما در طبیعت ما نیازهای پیدا کرده غریزه پیدا کرده مثلا غریزه از کنم گرسنگی هست ما گرسنه میشیم نیاز به داریم قسا داریم این میده بیچاره هم را باید راضی کرد اونا چی کار کردن؟ اونا می رفتن از های درختان گفتم ما می خوریم، ما از حشاش الارد می خوریم، ما از ارز کنم که گیاهان زمین می خوریم، یکی این بود، دوم از کنم بدن یک غریزه جنسی داره که در هر انسانی گذاشته شده به خاطر همین الله عزوجل مشروع فرموده نکاح را، این غریزه جنسی را خدا حکمتهایش را بهتر میدوند ولی شاید یکی از حکمتها اینه و در قرآن هم گفته شده که نسل انسان ادامه بیابد خب پس این که میگه من ازدواج نمی کنم من نیازی ندارم این با فطرت مبارزه کردن است خب این وقتی غریزه بالا بزنه چه کار می کنه اسلام گفته وقتی که جوانی نمیتونه روزه بگیره اما اونها چیکار میکردند؟ فما رعوها حق رعایتشا مفسرین نوشتن اونجا که میرفتند میگفت ما هیچ چیزی نمیخوریم مردم میگفت اینها دراویش هستند اینها از کنم که رهبان هستند اینها اهل خدا هستند بهترین غذا برای اینها بهترین غذاها رو برای اونها بردند لذا شکمشون بهتر بود سیر میشد و چه بسا به اونها مراجع میکردند یا یعنی اینکه در همون جایی که با هم دیگه رهبانیت می زن و مرد بودند گرفتار فساد اخلاقی می شدن یا زنهایی که پیش اونها می رفتن غذاب اونها می اونجا با اینها العیاض الله گرفتار زنا می شدن پس از هیچ جهتی اونها رهبانیت را رعایت نکرد الانم شما می همیشه تو کلیسا این پدرهای روحانی گاهی دوچار اشتوا دو میشن یا نمیشد تا روزهای جنسی هر سال تو اخبار ما می خانیم هر سال این اتفاقات می افته اینا رفتن اونجا میگن ما برای ایسا عبادت میکنیم ازدواج نمیکنیم یک زن هستن یک گروه هستن احیانا اونجا با هم دیگه فساد میکنند لذا این رحبانیت را اینها انتخاب کردند اختیار کردند ولی چید اینها حق این را رعایت نکردند همون چیزی که اختراع کرده بودند اون نیتی کن هاذا اصلا حتی به همون نیت نتوانستن پای بند بمانند. ببینیم الله ما قرطبی ما کتبنا عليهم الا ابتغاء رضوان الله. ما برای اونها ننوشتیم. مگر چی نوشتیم؟ دنبال رضاي خدا باشند. اما بعضی میگویند که الا ابتغاء رضوان الله با ما کتبناها نیست با ابتدعوها هست. یعنی رهبانیتا ابتدعوها الا ابتغاء رضوان الله. انها ایجاد نکردند اول رهبانیت را بلکه برای رضای خدا و معنا علما لو ما فرضنا علیهم ما فرضناها نحن علیهم راسا ما رسمنا برای اونها رهبانیت ننوشتیم ولیکن ابتداوها و الزمو انفسهم اما انها خودشون این را ایجاد کرده این بدعت را برای چی ابتغاء رضوان الله برای؟ طلب رضای خدا الان هم خیلی ها هستن که از این نام بعضی ها هستن واقعا اهل دل اهل اصلاح خودشون هم صالحا دیگران را هم اصلاح میکنند اما بعضی ها به نام اصلاح مغازه درست کردند که مردم برن برای اصلاح پیش اونها مردم بهترین برها را برای اونها میبرن بهترین مالها را برای اونها میبرن از این طریق جمع میکنند پس این همون رعایتن نکردن هست فما رعوها حق رعايتها فاتينا الذين آمنوا منهم اجرهم ببینید ما دادیم بکسانی که ایمان آوردند از اجرشون را معلوم میشه که کسانی که از مسیحیت مسیر مسیر دین را گرفتند همه گمراه نشدند خیلی ها هستند که ناجی شدند رسول الله صلی الله علیه و به ابن مسعود چی فرمود يا ابن مسعود اما علمت ان بنی اسرائیل تفرقو 72 فرقه نمیدونی که بنی اسرائیل 72 گروه شدند كلها في النار إلا سلاس همه وارد جهنم میشن مگر سه گروه خوب دقت بفرما این را صبح عرض کردم سه گروه وارد بهشت میشن اونهایی که این مسیر را رفتند و این مسیر حق مسیر را ادا کردند گروه اول فرقه آمنت بی عیسی و اعداء الله في نصرته حتى قتلوا گروهی که بی عیسی ایمان آوردن با دشمنان خدا جنگیدند در راه مسیحیت شهید شدند بعد از عیسی حواریون جهاد کردند والله عز و الله عزوجل که دین مسیحیت را که در اقلیت بود بر دین یهودیت که در اکثریت بغالب کرد ببرکت جهاد بود بس اینها شهید شدند اینها را خدای عزوجل بخشید اینها ناجین هستند و فرقه لم یکن لها طاقه بالقتال گروه دیگری که توان جنگ نداشتند فامروا بالمعروف و نهي عن المنكر اینا ما تبلیغ میکنین امر به معروف نهی از منکر اینا هم جز ناجیان هستند و گروه سفون فرقه لم یکن لها طاقه به هر دو اینها توانهی نداشتن نه جهاد کردن نه تبلیغ کردن چیکار کردند؟ عبا پوشیدند ارز کنم اون عبا مخصوص خودشون را که برای عبادت پو پوشیدن و خرجو الى القفار والفیافی رفتن به سهراها و به ها رفتن اونجا عبادت بکنند همونجا مردند خیلی از مسیحیان عهد قدیم هستند که تو غارها هستن همونطور مثل اصحاب کهف هایشون هست که در سور کهف شالله عرض میکنم لذا اینها به این دلیل که اینها رفتن فقط خدا را عبادت کنند اینها هم پیروز هستن، اینها هم ناجی هستن. لذا الله می‌فرماد: فآتین الذين آمنوا اجرهم آمنوا منهم ما دادم كسانى را كه ايمان آوردم اونها اجر آنها و كثير منهم فاسقون بسیاری از آنها فاسقون هستند. يا أيها الذين آمنوا هل ترغيب اهل الكتاب بإيمان بررسول و جهاد در راه رسول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اي مؤمنين شما ابد سيد از به ترسيد از خدا میگه مراد از اين مؤمنين کساني كه به كتاب كتابهاي آسماني ایمان آوردن يا ايها الذين امنوا هر جا در قران ذك شده مراد مؤمنين هستند اما اينجا مراد اهل كتاب هستند بدليل چي وا امنوا برسوله بعد از اینکه به اون کتابها و انبیاء ایمان آوردید، آمینو به رسولی، به رسول الله ایمان بیاورید، یوکتكم کفلاينی کفلین رحمته الله میده به شما دوتا سهم از رحمتاش. ويجعل لكم نورا تمشون به وعد يدفهم الله قرار بيدبراي شما نوري النور نور ایمان است نوري كي تمشون به درز و در پارتو اون ایمان راه بروید ويغفر لكم الله شما را مغفرت مي فرماید اين همه وعده وعده اول ياتكم كفلين وعد يدفم يجعل لكم نورا وعد السم ويغفر لكم والله غفور رحيم و خداون و مهربان است. لألا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ لألا جار متعلق فعل مقدر است. بالغنا في هذا البیان. ما این بیان را صورت کمال برای شما بیان کردیم چرا؟ يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ بعضی ميگن لِأَلَّا لَام زائد است. تا اهل کتاب بدانند. ببینید؟ اهل کتاب چرا ایمان نیاوردند؟ چون بعد از ابراهیم آلے سلّات و سلام وقتی که خداوند به ابراهیم اسحاق ردهت همه انبیا از نسل اسحاق بودند. از نسل برادر اسحاق حضرت اسماعیل فقط حضرت محمد صلی الله عليه وسلم است. از این یهود ناراضی بودند که چرا از فرزندان اسرائیل یعقوب و اسحاق نیست؟ چرا از فرزندان؟ لذا <سؤال> الله بفرمات تاكي يهود بداناً لأي لألا يعلم أهل الكتاب تا أهل الكتاب بداناً كي ألا يقدرون على شيء من فضل الله أس فضل خدا كيكي كي أس فضل خدا كيكي أس فضل خدا كيكي أس من تقسيم النبوة قادر ليستاً وأن الفضل بيهد الله يؤتيه من يشاء فاضل بدست خدا بيهر كسي كمي خادمي داد وبعض من قلنا الله زائد نيس لألا يعلم أهل الكتاب تا اینکه اهل کتاب ناوقف نمانند، بی اطلاع نمانند، بی خبر نمانند، این ترجمه جالبتر میشه. خدای از می فرماید ایمان بیاورید و همچنین بی خبر نمانید، نا آگاه نمانید، بدون علم نمانید، ای اهل کتاب. لی الله یعلم اهل کتاب، ناوقف و نا آگاه نمان اهل کتاب که الله يقدرن این اهل کتاب توانایی ندارم بر چیزی از فضل خدا و من جمله فضل خدا تقسیم نبوت است و ان الفضل بيد الله فضل بدست الله است یاتیه من یشاء به هر که الله بخاطم می‌دهد والله ذو الفضل العظیم الله تعالی صاحب فضل عظیم هست صدق الله مولانا العظیم